سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی تذکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه مسلام جلسه اول بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و لیل ازا یقشاها و سماعه و ما بناها و لعرض و ما تهاها و نفس و ما سواها فعلحمها فجورها و تقواها قد افلها من زکاها و قد خواب من دساها امیدوارم که خداوند توفیق معرفت بیشتر دینی و توفیق عمل به اون معرفت در همه ایام و لیالی بالاخص در ماه مبارک رمضان به همگی عنایت فرماید ان الله و اگر این ماه رمزان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار داده است ما را آمرزیده از این دنیا ببرد ان الله و ارتباط بیشتر و عالیتر و صحیحتر بین ما و خودش و اولیایش را مقرر فرماید انشاء الله از امشب با توجه به این سوره مبارکه قرآن سوره شمس در خصوص تذكیه نفس و تکامل اخلاقی و روحی و معنوی بحث را آغاز میکنیم یکی از سوره ها و آیات مربوطه در قسمتی از آیات مربوطه اون سوره که در خصوص تذکیه نفس و تکامل روحانی و معنوی و رفتاری انسان ها عجیب مطلب دارد همین سوره مبارک است من تا قبل از قسمت و نفس و ما سواها که شش آیست قسم یاد میکنه خداوند به خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین خیلی سریعت میشم و شمس و زهاها به خرشید و اون درخشندگی نور خورشید اون پرتو افکنی خورشید که اگر تفسیر آیه رو در نظر بگیریم یعنی همین آف خورشید که نور میدهد اثری که این خورشید دارد منظومه شمسی رو حفظ میکنه سیارات به گرد خورشید میگردند اگر خورشید نباشد کره زمین ساقط است وجود نخواهد داشت اگر خورشید نباشد در کره زمین حیات نخواهد بود چون گیاه و حیوان و انسان امکان موجودیت پیدا نمیکند این خورشید است و نور خورشید است که امکان زنده بودن و حیات ما را در این عالم خاکی برای ما فراهم میکند اگر به تعویل آیه نگاه کنیم که فعلا فرصت بحثش نیست گاهی به هایی اشاره داشتم و اگر خدا بخواهد باز به هایی وارد و اون بحث شدیم عرض خواهم کرد این خورشید مقام ولایت است ولی الله که خورشید عالم هستی است موجودیت موجودات به یوم نهی روز قلورا و به وجودی هی سبتت الارض و سما ارض و السما و حاکذا که داریم این خورشید حالا ما در حد تفسیرش فعلا ول قمر ازا طلاها کالبته در تعویل خورشید رو نبوت میگیرن قمر رو امامت که یه اشاره ای قبلن داشتم حالا وارد بحثش نمیشم اجازه بدید به همین معنی ملکی و عالم مادی همین خورشید ظاهری همین ماه ظاهری همین شب و روز ظاهری فعلا معنا کنم و ماه که نورافشانی ما که از خورشید میگیرد و خودش هم یک عامل برای زیست ماست هم خورشید را خدا قرار داده است که در خدمت من و شما باشد هم ماه را خدا قرار داده من و شما بهره ببریم و نهار ازاج الله روزی که خدا مقرر فرموده و این نورفشانی روشنگری و جلایی که روز دارد و لیل عزایقش یخشاها و شبی که میپوشاند پرده می تاریکی ایجاد میکند که اگر خورشید نباشد ماه نباشد و گردش زمین به گرد خورشید و گردش ماه به گرد زمین و این نظام دقیق الهی در این عالم وجود نداشت امکان حیات این چنانی برای ما نبود که در سوره یاسین اشاره می کند که و, شمس و تجری مستقر لمستقر لها زال که تقدیر رول عزیز علم و قد درناهم منازل حتی عاده کل ارجون قدم لشمشون بقیلهها انتدرک لغمار وللیل صابق النهار کلن فی سالکن یس بهون نیس بهون یس بهون این نظامی را که خدا قرار داده است شمس خورشید در جایگاه خودش حرکت دارد و این قمر را که به حرکت در آمده و زمین را شب و روزی که خدا قرار داد نه شب بر روز پیشی میگیرد نه روز بر شب پیشی میگیرد زالکه تقدیر العزیز العلیم این اندازه گیری شده تقدیره یک حساب معین شده است به وسیله اون خدایی که عزیز است و علیم علیمه یعنی آگاه عزیزه یعنی مسلط یعنی قدرتمند قاهره و میدانه چگونه برنامه کند و فی فیفلکن یسوحون هر کدام در آن مدار معین خودش شناور و حرکت میکنه یعنی اگر این مدار بیزوی نبود اگر این حرکت نبود اگر شب و روز درست نمیشد، اگر چهار فصل وجود نمی‌آمد، امکان زندگی ما نبود. نور روز لازم است برای رویش گیاهان و چه و چه، تاریکی شب لازم است برای یک سلسله ها تمام و تمام ابزار است و سما و ما بناها و و ما تهاها، آسمانی که بدین صورت برپا شده و زمینی که به این صورت گسترنده شده همه به همهرا را خدا براش انقدر ارزش قائل شده که قسم می‌خورد سوگند بر این خورشید و نورافشانیش و ماه و شب و روز و آسمان و زمین با این خصوصیات یه دفعه بعد از این چند قسم که در قسم دو مطلب ناخته شده یک اهمیت مطلب دو ارزش قائل شدن برای اون موردی که بهش قسم میخورن شما اگر میخواهید به یه مطلبی قسم بخورید یه امره بیارزشه پیش پا افتاده رو که بهش قسم نمیخورید مثلا به فردی میگویید که خیلی جانت برام عزیزه با وجود این میگم به جان شما قسم چنین و چنان شده کسی بگه به خاک تو کوچه ها قسم خب از کسی میکنن کشیبه که با اون لباس کهانه فرسوده شده و ای که من دور انداختم قسم خب از میکنن خدا قسم میخورد یک میخواد بگه مطلب مهمه یه نکته زریفی میخواد اینجا توجه به ما بده از بس زریفه و مهمه و توجه به او لازم که با سوگن اونم نه یکی نه دوتا چند بار پشتره هم و چند سوزه ها و قمر ازاتلا ها همینجور پشتره هم شوگن میکره میاد تا میرسه به اینجا همه این ارزش خورشید ارزش قمر نورفشانی شب و روز و آسمان و زمین و و همه اینها و نفس و ما سواها ها بر نفس نفس چیه؟ و ما سوا از یه نفس از اینجا میخوام شروع کنیم حالا بحث داریم روش قبل از این که به خود نفس برسد و نفس و ما سواها سأل همه فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها چند نکته یک قسم به نفس نفس چیه که خدا به اون قسم خورده؟ و چرا چند قسم قبل خورده و همینجا هم دنات باد قسم خورده اگر نفس چیز ارزنده نباشه که بهش قسم نمیخورن همونطوری که خورشید در اگر خورشید به معنی ظاهریش بگیریم خوب این ارزش حیاتی برای ما داره قمر و شب و روز و این آسمان و زمین ارزش حیاتی برای ما داره که اگر نبود حیات ما در این کره زمین نبود حالا این نفس کیه که همه اونها برمیگرده در ارتباط با این نفس در قرآن کریم اگر از دید قرآن نگاه کنیم الله یتوفل الانفس هینه موتها. الله کسی است که خدا یتوفل توفی یعنی تمام و کمال یه چیزی رو انجام دادن یا وفای به عهد کردن یعنی بی کم و نسبت به اون امر اعمال نظر داشتن اگر الان این شیء بنده به عنوان امانت به شما بسپرم شما وفاداری بکنید در امانت یعنی به گونه این رو حفظ میکنید هیچ کم و در این ایجاد نشه سالم بدون لبپریدگی بدون ترکبر داشتن و کم و در این اینو به من تحویل بدید این توفی وفا از همین جاست. توفت الله یا توفتل انفس خداوند تمام و کمال در موقع مرگ نفس تحویل میگیره تمام و کمال خب جسم ما رو تحویل میگیره مگه نمیگیم روح از بدن جدا میشه اونی که هیچ کم و توش نیست و با تمام هستیش تحویل داده می شود به درگاه الهی در موقع مرگ نمیگه قیامت چون قیامت دوباره فاذا نفخ فشور بعد داره که این روح برمیگرده به بدن این نفس دوباره پیوسته به بدن میشه نه حين موتها در موقع مرگ در موقع مرگ روح از بدن جدا میشه پس اونی را که نفس گفته یعنی همین روح وجود ما ما یه جنبه جسمی داریم و لقد نل الانسان من صلا سوره مؤمنون از آیه 14 به بعد و لقد خلقن الانسان من من منتین ثم جعلناه نطفتن فی غرار مکین تا اونجا که علقه و مزغب و, و کسون ال ازام لحما اینا همش مراحل چیه؟ بدن جسم از عناصر خاکی علقه مزقه گوش استخان پوست دورش گرفته ثم انشأناه و آخر یه حسی دیگه یه موجودیت دیگه که امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر برهان در زیر این آیه شریفه ثم انشعناه خلقا آخر فرمود ای نفخت و من روحی نیست در جای دیگه قرآن خود خدا فرمود وقتی که جسم انسان رو سویت تو آراستم و نفخت و من روحی از روحم درو دمیدم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودم ثم شعناه و خلقا آخر یعنی نفس و من روحی یعنی غیر از این گوشت و پوست و علقه و مزغه و لحم و, و این حرفها یه وجود روحی که از عالم روح از عالم بالاست به این وجود داده شده است که این رو به یک لحاظ بهش نفس میگن حالا چرا بهش نفس میگن اجازه بدید در این جلسه وارد نشم چون من بیشتر میخوام تذکیه نفس رو بحث کنم قدعف لهمن زکاها رستگار کسی ها به چی برمیگرده میگرده؟ هم زکا ها زکاها ها برمیگرده به نفسه قد افله ها قد افله قد بر سرش در اومده قد در زبان عربی وقتی بر سر این فعل در میاد چه معنی میده تحقیق رو همانا به تحقیق با اون همه قسم ها که ها بهش همانا به تحقیق حتماً رستگار شد اون کسی که زکاها نفس را تزکیه کرد پس نفس تزکیه نفس و اون مقدمات در رابطه با تزکیه نفس حالا این آیت بپرمید <تصفح> انشالله مبسود و مفصل در این ده جلسه انشالله بهش خواهیم پرداخت جهات گوناگونی رو باید مورد نظر قرار بدیم فعلا در این نکته پس وقتی قران میفرماید الله الذي الله يتوصل انفس حين موتها خدا که این نفس رو در موقع مرگ تمام و کمال تحویل میگیره نفس رو تحویل میگیره یعنی دست رو تحویل میگیره پارو گوش و جسم رو نه اون بُعدی که نفس و فیهم روحی گفته یعنی بعد روحی وجود ما نصب بوعد الهی وجود ما اخلاق مربوط به نفسه اگر ما نفس نداشتیم اخلاق برای ما مطرح نبود یه حدیث اینجا بخونم بعد وارد ادامه بحث از قرآن اول بگیریم که وارد بحث‌های روایی انشالله خواهیم شد قال علی علیه السلام امیرالمؤمنین در کتاب قرر الحکم فرمودند حسن الخلق للبدن و حسن الخلق لنفس حسن الخلق للبدن زیبایی اندام ما داریم تربیت بدنی داریم بهداشت و تقضیه داریم این حسن خلق، یعنی خلقت جسمی ما جنبه بدنی و این کالبد ما میتونه زشت باشه میتونه زیبا باشه میتونه زیبایی اندام داشته باشه میتونه عدم تناسب اندام ما یه نقشی هم توش داشته باشیم و حسنال خلقه لنفس اما زیبایی خوی خلق خلق خلقه اگه اینو رو بخوام به زبان ساده تر تو فارسی بگم سیرت در مقابل صورت جمال در مقابل کمال صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار جمال آراستگی ظاهری کمال آراستگی نفسانی و روحانی ممکنه یک انسان از نظر خلق یعنی بدن جسم و این جمبه های ظاهری وجودی سالم چنومند کامل و خیلی زیبا یعنی صورت عالی، جمال عالی، اما سیرت یک گرگ باشه یک درنده به تمام معنا باشه. از نظر جمال زیباترین انسان بر از نظر کمال درندهترین ترین درنده در قیافه در انسان. این میشه یا نمیشه؟ اون چه که باعث می شود یک انسان در مقام رفتار و کردار و اعمال به این گونه های مختلف در میاد این مربوط به چگونگی نفسه با اشاره اجازه بدید درس کنم چگونگی جسم چگونگی بدن آقا بنده الان در جمع شما این کتاب دعا مفاتیح جنان رو به دستم گرفتم فرض کنید با دو دست خیلی راحت جابجا به جا با یک دست، یه وقت راحت، یه وقت شما دستم ای شروع میکنه به لرزیدن این چگونگی جسم منه، چگونگی توان بدنی منه شما به عنوان یک پزشک متخصص و یک حاضق صاحب نظر میگید که نباید بدن شما در این شرایط باشه که یه مفاتی رو به دست گرفتی دستون به لرزه چی شده؟ چه مشکلی کش اومده آیا روزه بودید هنوز افتار نکردید شدت زعفه آیا یک حسالتی بر شما آرز شده که در اثر آیا آیا ریشیابی میکنید تیگیری میکنید این مربوطه به بدنه در جنبه خوی و خلق که مربوطه به نفسه یکی یه دروغ میخواد بگه تا متوجه میشه داره دروغ میگه تمام بدنش میلرزه رنگ چهرش عوض میشه بعدم میره یه گوشه خلوتی میشینه زار زار عشق میریزه خدا من در معرض دروغ گفتم قرار گرفتم یا خدای کرده دروغم گفته بعدش میگه وای من دروغ گفتم من قیبت کردم من کسی رو آزوردم من چرا این کار کردم اونقدر قدر عشق میریزه ناله میکنه متاثر میشه از این حال به اون حال میشه یکی دیگر ناراحته که این رو جوی پیش نیومد من تا دروغ بگم ممکنه کم و بیش یه یکی از ماهایینا رو دیده باشیم میگه امروز یکی از عزیزان شایدم هم این جلسه الان باشه نمیدونم ایشون فرمودن من به یک شخصی برخوردم که مثلا از متمولین خیلی بالا گفتم در چه حالی؟ گفت خیلی بده سیدی حالا بده در چی شده خدا بد نده گفت دو ملیارد سرمایم راکت تو بانک اوزای اقتصادی به گونه ای نیست که بتونم به کار بندازم و از این قصه دارم این را آقا دو میلیارد نقده حالا یک موسین الان از این که شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که من باز بتونم اینو به جریان بندازم یکی از این ناراحته به یکی هم شما میرسید رنگ از چهره پریده یه حالت آزردگی چی شده خدا بد نده بله دیشب این فکر فرو رفتم پارسان سوم چهارم پنجم ششم دهم ماه رمضان من در چه شرایطی بودم امسال هفته اول ماه رمضان یک سال گذشت من کمی فرقی نکرده چرا من اینجوریه چرا پیش نرفتن بعضیا به کجا رسیدن بعضیا به چه مقاماتی خب اینم قصه میخوره اونم قصه میخوره دیگه بابا مثلا ابن در حالا شبهای ماه رمزان شنیدن این وقایع تاریخی هم آموزنده است در شرحال یکی از بزرگان این قصه نیست الان میگه ما گفت یک عالم بر جسته ای بود از نظر رفتاری و کرداری و منش انقدر سلیم و نفس انقدر پخته و بردبار که افراد بیراحتی کسی نیمتونست ایشون از اعتدال رفتاری خارجش کنه چند تا جوان تصمیم گرفتن هر کی توانست این آقا رو عصبانی کنه و از اعتدالش خارجش بکنه ما مثلا جایزه بهش بدیم خب عمر دیگه هر کسی یه کاری ازش بر میاد من نیمه های شب سه تا چهار تا جوان اومدن در خونه ملی منده خدا در زدن کوبیدن این پیرمرد بیچاره از خواب پرید اومد دم در بال چهارت جوان علن پوشو در ایستادن یه قیافه ها و عجیب و غریبی سلام علیکم آقا بله بفرمایید آقا ما اومدیم از شما یه مسئله دینی بپرسیم. خب معلومه دیگه قرص یا اون وقت نصف شب علالقائده بود این انسان خسته بشه کسل بشه چرا مردم عذیت میکنید؟ چرا باعث شکنجه مردم میشید؟ آخه این وقت شب وقت مسئله پرسیدن اما ایشون اینجوری برخورد نکرد. با کمال خونسردی گفت: "جداً خوشحالم. خدا رو آره شکر چه جوانایی ما داریم انقدر عشق به یادگیری مسائل دینی دارند به این مسائل زیاده که این وقت شبم دنبالش میگردم حاش پس بر من تکلیفه شما تا این وقت شب بیدار موندید مسئله بپرسید من جوابتونو بگم خب بفرمایید آقا جون اینا دیگه این قسمتو نخونده بودن این نگاهی بند یک کردن خب چی بگیم یکی فقط تونست چیزی به ذهن گویا یادمون رفت ما خواستیم چی بپرسیم خب باش آقا جون برید هر وقت یادتون اومد در بزنید درو در بس اینا یه ساعتی صبر کردن، ای کردن، چی بگیم؟ آقام دوباره خوابش ببره. این دفعه که در زدیم عصبانی بشه، با این شرایط یک ساعته بعد در کوبیدن. بنده خدا درو کرد با قیافه باز و خوشادایی یه نگاهی بین ها کرد. ها یادتون اومد عزیزم پس فرمایید بپرسید. خب بله آقا یادمون اومده، ولی رومون نمیشه سوال کنی گفت نه، لا حیا فدین و برای اینجاها گفتن، مسئله دینی پرسیدن رو در نداره، سوال کنی. گوه آقا ببخشید من میگم ببخشید اونی که نقل کرده اینا رو دیگه نداره گوه آقا از شما بپرسیم که مدفوع انسانی مذش چیه خب الان چات جوانی که میخوان عصبانی کنن ایشون با کمال خونسردی گفت بله جوابشو بلدن اول شیرینه بعدش ترشه بعدش هم تلخ اینا جثارتو بالا بردن گفتن مگه شما استعمال کردید این میزنین. گفت نه من استعمال نکن از در علمی میگم چون از علمی مگس به دور شیرینی جمع میشه ابتداش مگس میره سراغش. بعد پشت چون به چیز ترشی میره بعد کرم چون سراغ تلقق شروع که توج علمی دادن یکی از اینا به گرری افتاد وجد آخه آخره. انسانه ناخود آگاه به که آقا ما رو ببخش. گفتها من منتظر همین لحظه بودم. حالا حالی دارید بشینید که شما حرف بزنم. اما اولی که من در وا کردم چشم به شما افتاد. عنیدم شما قصه سو دارید اما گفتم خدایا پناه بر تو کمکم کن من امشب دو راه داره یک بگم عذر میخوام ببخشید فلان فلان شده آدمای بی سر و پا بی پدر مادر آ. چرا مردم میآزارید شما ققخخ بخندید منم اعصابم خورد تازه خوابم ببره یا نبره نتیجش چی کی شد من خسته عصبانی شما هم قهقه خنده رفتید نه شما تکون خوردید نه من ای بردم اما قسمت دوم بذار یک شب خواب من حرام بشه بذار یک شب آرامش من اینا بگیرن اما شاید یک نفر از اینها یه تکانی بخوره این بود از خدا کمک خواستم این یه ساعتی که شما رفته بودید من نخوابیدم داشتم دعا میکردم که خدا یا این جونا رو هدایت کنه چرا اینا اینجوری این جوونا برگشتن خودشون شدن از خدمتگزاران انسانی اونا این قضیه رو نرفتن خب یه انسان دیگه گفت این مربوط به جسمه این خیلی ورزش کرده بدنش قویه البته اینا یه ارتباطاتی داره بعد عرض می‌کنم ما اینا رو قبول داریم که باید سلامتی بدن در تعالی نفسانی که تأثیراتی داره اما اگر یک انسان قویه اون چنان تو کاراته کار کرده که با یه لگد و یه مشت ده تا و ده متر می پرونه اونور چون اونجوری این شب اینجوریه نه این رو نفس کار کرده این همین نیست که میگه قد اصل من زکاها نفس چیه؟ هزی یه نفس چیه؟ یه نفس به اینجا میرسه همینطوری که توان جسمی من در یک شرایط مثل وزن بردار یک وزنه چند ست رو جا, جا میکنه یه وقت هم این کتاب رو نمیتونه تکون بده اینجا متخصص مربوطه میاد آقا جون بیا این کار رو بکن این کار رو بکن تا در جنبه بدمی بتونی این کار رو انجام بدی انجام در جنبه نفسی میگه انسان یک وجود قوی عظیم عالی ملکوچی الهی در تو قرار داره ما اسم و اینو گذاشتیم نفس و اونقدر براش ارزش قائلیم که خدا به این قسم میخوره اونم چندین قسم قبلش از خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین و اون خالقی که اینها رو قرار داده به همه قسم میخوره تا برسه و نفس او و ما سواها سوگند بر این نفس مفسرین میگوین چرا خداوند قبل از که وارد بحث سوگنده به خود نفس بشه سوگنده به خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین خورده میگن اگر بخوایم تعویلش رو بگیریم که خیلی قشنگه قسم به نبوت قسم به امامت قسم به نورفشانی امامت و نبوت قسم به آسمان رفیع نبوی و به اون زمینه گستری ولایتی که از اون آسمان می گیرد و در این گستره پخش می کند و به اون روز تجلی ولایت که ظهور امام زمانه و به اون شب تاریک دوران غیبت که برخی چون در شب راز و نیازه در شب مناجاته در شب عشر و سوز و گدازه قسم به اون دلسوختگان دوران غیبت، که در اون گوشه ها راز و نیاز دارن به این معنی تحویلی بگیریم اینا همه در ثبات با نفسه اگر نفس نبود اینا معنا پیدا نمیکرد اگر تفسیرشو بگیریم تحویلو نگیریم همین خورشید، همین ما ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری یعنی اگر خورشید باشه ماه باشه شب و روز در نظام خلقت باشه زمین با این گستردگی و آسمان با این کیفیت قرار داده شده باشه تزکیه نفس برای انسان صورت نگیره همه نعمتها ها در رفته همه اینها برای اینه فائنی جایلون فلعرز خلیفه خلیفه خدا در این عرز به مقام قرب خدا برسه خورشید باید باشه و ماه و شب و روز تا در این عرض امکان قرب حق به وسیلهٔ نفس برای من و شما فراهم بشه در غیر این صورت امکانش نیست و بر همین اساس این نکته ظریف در اینجا مطرح میشه که اگر ما یک باغچهای رو در نظر بگیریم اول اومدیم سنگاشو جمع کردیم ریختیم دور الفای های هرز کندیم بردیم تو. شخمش زدیم. یک کانال هم کندیم از اون سرچشمه جوی آب را آوردیم توی مزرعه برای چی ؟ برای اینکه میخوایم در اینجا چیزی پربرش بدیم بیاد بالا. حالا سنگ و جمع کردید ریگو جمع کردید ریشه های هرز و کمدید کردی، کردید. شاخه های بلند درخت های اطراف که سایه می کرد. همه رو هرست کردید که آفتاب برسه. کانال کانالم کندید که آب را از سرچشمه بیاری به بی اینجا بریزید اما چیزی نمی کارید. این کارا همه هدر هست یا نه بیهوده عمر تلف کردن هست یا نه در زمین دیگران خانه ساختن هست یا نه زیرک و که به اون هدف قائی توجه دارند برای چی شوخ کردیم خدا میگه من خورشید قرار دادم که منظومه شمسی یا نبی ولی قرار دادم یعنی از اقیانوس عظیم الهی کانال نبوت و امامت رو به قلب شما انسانا سرازیر کردم که این ارتباط و و که چی بشه نفسی که به شما داده ام تذکیش کنید وقتی نفس تزکیه شد به کجا برسید بشید سلمان بشید عبوزر بشید اون وقت انسان کجایی؟ به چی دل خوش کردید مثال من خیلی مثال برچگانه ایچاره ای ندارم چون توی این عالم ماده هم میخوام مثال بزنم خوب دقت بفرمایید اگر من این مزرعه رو که مثال زدم با این همه خونه دل سنگا رو جمع کردم درخت رو عرض کردم علفه رو کندم شخم زدم کانال کشیدم و و و که این مزرعه مثلا توانش این است تقاضا دارم دقت کنید مثلا این مزرعه توانش اینه با این کاری که من کردم یه مقدار گندم بپاشم 100 تن گندم بردارم فرض کنید من اولین قدم توجهی به این توان مزرعه ندارم چون توجه ندارم حالا که همه این کاراری کردم یه دونه مثلا فرض کنید بوته گل سرخ شد یا یه درخت توش در اومد دو میوه داد آقا دارم اوج میگیرم زور میکنم. ببینید یه درخته، یه دونه گله دو تا سیب، اما اونی که وارد اون گوشه میشین هی، میگم چرا؟ میگه صد تون گندم بود برمی‌داشتی؟ به چی قانه شدی؟ خدا پیغمبر رو فرستاد قرآن قرآن بیاره، بگه و نفس و ما سواها، تمام آسمان و زمین، خورشید و ماه، شب و روز، این همه نظام عالم برای اینه که صد ها معنویت نمیگم مجبورم اینجوری بگم معنویت که میتونم وعده بکنم صد خروار ارزش از این وجود شما به جهان تراوش کنه خدا به فرشتگان بگه ببینید و لکم فل عرضه مستقران و مسائل الهین برید روی زمین استقرار شما فعلا متا و کالای بهرهمندی شما فعلا رو زمینه ولی یا ایها النفس المطمئنه نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تن مرضیه فی عبادی سخرلی جنتی بیاید بالا من بدبخت که اولین قدم نمی‌فهمم کیم لذا به من میگه و نفسن نفس رو میگه چیه؟ اون بعد روحانی وجود شما که نفخت و فیه من روحی یسالون عن الروح روح الروح روح من امر ربی این نفس اونقدر عظیمه که قسم بر این نفس که شما رو میکشونه میبره بالا اما قد افله هم من ذکا پس این بعد وجودی ما رو اینو بهش میگیم نفس رفتار ما مربوطه به نفسه مشی ما مربوط به نفس حالات گوناگون انسانیت ما مربوط به نفس یادآوری میکنم نیروی بدنی که اگر این وزنه چند صد رو بلند کنه کار کرده تن سالم داره وزنه چند صد رو بلند میکنه کار نکرده تن بیماره یه مفاطی رو نمیتونه تکون بده نفس تربیت شده نفس تکامل یافته نفس پرورش داده شده بر قدرت میرسد پول مقام شهوت ریاست دنیا و هرچه هست بیارید در مقابلش اون قدر قوی میشه میگه برو این دام بر مرگ دگرنه که بلند است آشیانه میره داماده این مرد بزرگ از استاد مله در جوانی به جایی رسید که با شیخ بهایی هم جلسه شد شیخ بهایی 40 سال خونه دل خورده من از جوان ترها تقاضا دارم دقت بکنی این نفس همینجا مجبورم یه آیه بخونم یعنی این بحثو بگم یه آیه بخونم زوده خیلی هنوز این بحث دامنه داره اول خودی سرمایه‌ای که داریم میخوام رو بدونیم خوب دقت بفرمایید اگر این مزرعه توان داره صد تن گندم بده به نوت تون قانه نشو اگر این مزرعه توان داره صد تن گندم بده به دوتا گل قانه نشو تو بالاتر از اینا رو بخوا نفس شما چی توان داره امیر من شما ماه علی دیگه ماه رمزان ماه علیه بیاد علی خیلی باید باشیم تو این ماه این علی میگه انشاءالله میرسم البلاغه رو میاریم میخونیم میفرماید که ارزش نفس شما بهشته به چیز دیگه نفروشیه آقا یه انگوشتر به من میگن فرض کنید من برای این انگوشتر ارزش خیلی قائدم به من میگن آده هزار تومن فرض کنید از یه استادی یک مرد خدا یک عالم ربانی من با 100 میلیون حاضر نیستم محاوزه کنم به من میگه آقا پنجا میلیون میدم می نه خیره بنده نمیارزه وقت نگیرید مثال زدم میلیون هم نمیدم بگن که آخه چرا برای که ارزش براش قائلم اما همینی که 100 میلیون می‌ارزه دست یه بچه باشه آقا دو تا بستنی بهت میدم اینو به ما بده باشه یکی هم بدی میدم زود تا پشیمون نشده بستنی رو میگه میخوره قرفن یه چی کلاسر از گذاشتم یه انگشت دادم دو تا بستنی خوردم ما نفسمون رو به چی میفروشیم؟ به یه نگاه نامحرم به یه لذت شرانی شکم یه میس یه پول نشنختیم خودمونو لذا امیر المؤمنی علیه السلام میترماید افضل المعرفه افضل المعرفه معرفت المعر علا امر نفسه افضل المعرفه بالاترین معرفت ها معرفت انسان به نفس خودشه من عرف نفسه فقد عرف ربه اون کسی که نفسو بشناسه خداشو شناخته اون وقت اینجا دقت بفرمایید کسی که این معنا رو میدونه اینقدر قویه میره داماده توی حجره طلبه مجرب مشغول درس خوندن شیخ بهایی چه سال حوزه های علمیه ایران رو دیده حوزه های علمیه عراق رو دیده به شامات و اون زمان رفته عربستان رفته یک آدم ملاوی استخوندار دنیا دیده قوی برگشته پایگاه تشیع زمان در اسفحان شروع کرده به درس و بحث. میره داماد جوونی که سلس سن او رو داره با او هم کفه شده چرا؟ ببینید اون توفیقاتی که در تدکه نفس حاصل میشه میگه تو مدرسه بودم در مدرسه وا بود طلبه همه خواب بودن شمعی تو حجره من روشن بود اینجا جوان ها رو میخوام دقت بیشتری بکنم کتابم پیش رویم آخرای شب مشغول مطالعه یه وقت دیدم یه دختر خانمی دوان دوان وارد مدرسه شد و دید حجره من چراغ روشن بقیه خاموش اومد خودشو انداخت تو حجره من به کمکم بشتاب چی شده؟ ما مهمونی رسید چیزی تو خونه نداشتیم مجبور شدم بیام بیرون ببینم چیزی میتونم تهیه کنم یا نه چند تا جوون لات خیابونی منو تحقیب کردم من دویدم دیدم در مدرسه واضه به اینجا پناهنده شدم منو از شر این اوگاش نجات بده من دیدم اگه بخوام این دختر رو الان شب ببرم به خانوادش برسونم خواهی جوون ها ممکنه بیرون در کمی نیست باشن من یه نفرم سلاح نیست. گفتم شما امشب در مدرسه بمان صبح بشه من بتونم شما رو برسونم چون زن و مرد نامحرم نمیتونن توی پزا باشن ایشون تو حجره خودم شم و برداشتم اومدم بیرون تو سرما نشستم مشکول مطالعه شدم این گذرگاه هایی که وسوسه نفس شروع میشه نفس اجدرهاست کی مرد است از غم بیالتی افسرده است این مثالی مولوی داره خیلی در شنگه. میگه که اجده ها توی سرما توی یخ حالت مرده پیدا میکنه این مارگیرا معرکی گیرا که میرفتن مار میگرفتن و می آوردن و معرکی گیری کنن یکی درستی بیده اجده ها یخ زده بود خیال کرد مرده است. و ما که مار رو میاری معرکی میگیریم این دفعه اجده رو بذاریم دیگه مشتریمون زیاد میشه این اجده های زده رو مرده رو آورد و توی فضایی گذاشت و معرکه جمعیت هم جمع شده بودن آفتاب می‌تابید، تابید آفتاب تابید کم کم ای فرما این سرماب و انجماد برداشته شد یه اجده ها چش واکد و دهان واکد و شروع کرد بل ایدن گفت نفس ما اون اجده هاست. وقتی که زمینه تحریک پیش نیومده مثل اون یخزده انگار مرده است اما وقتی که زمینه تحریکش فراهم شد میبلعه خیلی ها رو نفسشون بلعیده خیلی ها رو من قاطعانه این ادعا رو در جمعه شما میکنم و انشاءالله در شب‌هایی که جلسه خواهیم داشت شب جمعه آینده و وقت‌های بعدش تا آخر رمزون که انشاءالله چندین جلسه داریم اینو اثبات میکنم بزرگترین دشمن ما نفس ماست چون حدیثم اینو گفته اعدا ادوبه اعدا عدوبه ما. دشمن ترین دشمن ما نفس کلتی بین جنبه ای. همین نفس شماست منتها همین اعداد دشمن اگه چگونه باش برخورد کنیم خب نفس اگه بزرگترین دشمن ماست تا چرا قسم به این نفس خورده اون هوای نفسه یعنی نفس ما که میتونه ما رو رشد بده گفت یه حاکمی به وزیرش گفت بهترین غذا میخوام برام بیاری زبان گوسفند و پخ براش آورد سردا گفت بدترین غذا میخوام بران بیاری زبان گوسپند و پخت آورد گفت چطور هم بدترین هم بهترین گفت زبان اگر در مسیر حق باشه بهترین مطالب رو منعکس میکنه در مسیر باطلا باشه بدترین حالا نفس اینه که میرسیم بهش اون جنبه است اگر شرائطش توجه بشه به کجا میرسه و اگر هوا در اون برانگیخته بشه این انسان رو کجا میبره میگه شیطان شروع کرد و نفسم این رو میخواستم بکنم که انشالله ثابت میکنم هر لقزشی هر انحرافی هر آلودگی در هر محیط آلوده و در هر جوه آلوده اول آمادگی درونی ماست اگه درون رو آماده کنید در گنهکار کرین محیط برید آلوده نمیشی اومدم بیرون و روشن کردم مشغول مطالعه شیطان اومد به سراغم شروع کرد وسوسه کردن یک آن ای گذرگاه های زندگی بزرگتران من جسارت نمی‌کنم کنم عزیز خواهران و برادرانم ای ماه رمزان ماه ارتباط بیشتر با خداست بیایم رو این نکته ها کار کنیم ای بزنگاه ها ما رو میبره با همه اونایی که لغزیدن، رفتن، آلوده شدن، بخش شدن، بیچاره شدن از اول اینجوری نبودن. یه لغزش سرازیری تند رو ببینید. به قول یک بزرگی میگه دنیا یخبندانه در یک یخبندان چجوری باید با احتیاط حرکت کنی؟ یه وقت پاتون در رفسر خورد، دیگه میلغزید، میرید. اینجاها رو مواظب باشید، دستگیره برای خودتون درست کنید، و به الله برای خودتون یه عوامل نگهداری درست کنید وقتی اینو در درونتون درست کردید شیطان خسته میشه شیطان معیوس میشه اما وقتی زمینه رو ببینه میگه شیطان تحریکم کرد با خود به اندیشه فرو رفتم فلانی تا این سن خدا گفتی پیغمبر گفتی دین گفتی قیامت گفتی جهنم گفتی بهشت گفتی اینا رو قبول داشتی یا نداشتی اگه قبول نداشتی خودت سر خود تعالی کلا گذاشتی چه نرفتی دنبالش تحقیق کنی راست و یاد روغه اگه نه باور داشتی حالا محک ها ببین این وری داری میری یا اون وری داری میری چه بکنم اینو اول تو ذهن خودم بیارم که اگر رفتم سر خوردم نمیخوام سر بخورم پس راه کجا دست بندازم یه دفعه به ذهنم زد یه انگوش کچکه رو گرفتم رو شم به در اثر سوختن درد میکشیدم که این درد باعث بشه شهوت یادم بره پنج انگشتم رو سوزاندم. بعد نوبت به این پنج انگشت رسید این بالا نه سوزاندن رو به این معنی کرده سوزشی که دردی شما یه آسیش سیگارم رو دستون بذاری تا مدتی درد سوزشش هست به این مقدار مثلا صبح شد خودم رو حفظ کردم این دختر رو به صاحبش رسوندم از سردا دیدم مطالب از کتاب میجوش. چشمه ای در قلبم چشمی در قلبم باز شد چشمه های از قلبم شروع کرد به ثوران که شیخ بهایی با ای هم عرض میشه من اخلسه لله اردین سباها جلت ينابي الحکمه من قلبه الی لسانه ای خدا تو رو به مظلومیت علی تو رو به حقیقت زهرا سلام الله علیه ما به قلب محدی قسمت میدهیم در این ماه مبارک رمضان، به ما این توفیق رو انایت کن این روحمون رو شستشو بدیم قلبمون رو پاک کنیم نفسمون رو تذکیه کنیم ما باید یکی عالم دیگه من به خودم میگم باید یه جای دیگه پرواز کنیم کجاییم به چی خوش کردیم در چه مرحله هستیم این مربوطه به این قسمت میشه که اگر خدا آسمان زمین ما خورشید شب روز همه اینا ابزار چند روزه ای به عنوان یک ظرف باز در قالب مثال بگم آقا ساختمونی ساختن عالی به عنوان دانشگاه کتاب خونه درست کردن آزمایشگاه درست کردن هزاران امکانات دیگه در کنارش گذاشتن همه اینا چیه؟ تا من در اون درس بخوانم. حالا من میرم توش میخوابم بله مح... فرسمه تابستون خیلی گرمه توی این کتاب خونه هوای خونک جالبی داره من راحت میخوابم گناه نکردم رفتم خوابیدم یا زمستون هوای سردیه اونجا گرمه رفتم خوابیدم گناه نکردم خوابم برده اما آ اینجا ساختن که من برم اینجا بخوابم یا اینجا رو ساختن که من برم چیزی یاد بگیرم شمس و غمر و شب و روز و آسمان و زمین و همه اینا رو ایجاد کردم برای چی؟ توش غذا خوب بخوریم تولید مثل کنیم فقط همین ز... خب اینه که خیلی عضو میخوام کرگدن و فیل و گرگ و عصبم داره پس انسان چی؟ آیا این ستون گندم بنابودی مزرعه بده همین خروخا با خشم و شهوت بود فی این که مال دنیای تیران مردیدی ز پای بند شهوت به در آیتا ببینی تیران آدمیت تیران مردیدی توز پای بند شهوت به در آیتا ببینی تیران آدمیت اینجای اجازه بدید من یک آیه قرآن رو دوتا آیه قرآن رو نازعات آیه چهل و آیه چهل و یک و اما من خافه مقام ربهی و نه هم نفسه عنل هوا فا انل هیل چه زیبا تقاصا من که باور کنی خدا میدونه انقدر ارتباطش با اون آیه برام زیباست که گاهی آدم اونچنان به وجد میاره که گاهی وقتا شدت زیبایی یک مطلب حال طبیع انسان رو دگرگون میکنه میگه نفس نفس چیه فع فجورها و تقوا الهام یعنی چی نمیدونم به لغتش تالا مراجعه کردی خود لغت الهام یعنی چی؟ یه چیزی رو بلعیدن و گرفتن اصلا کلمه الهام الهمهو یعنی یه چیزی رو به سوی او پرتاب میکنه و میگره میبله و اینو مثل مثلا یک روبودن زیرکانه یه چیز یه به بگونه این میبلعه و قورتش میده یه گوشهی مخلی میکنه که ممکنه دیگری هم متوجه نشه یعنی ال... اون وقت الهام رو در اصطلاح دینی اونی که خدا میندازه، قلب شما میبله این خوردن خوردنه یه وقت لغمه های مثلا مادی حساب کنی ده نفر بیش نفر گاهی توی مثلا فرق کنید این حیوانات پرورشی چند تا ماهی چند تا نمیدونم چیه چند تا چند. این دونه ها رو میخواد بندازه این ده بیست دهان هانی بازه یکی میپره چنان میپره زیرکانه اینا میگیره که بعضی هم متوجه نشدن شما دونه انداختید یا نه در بحث نفسی روحی خدا حقایقی رو داره همینجور می‌ریزه تو عالم بعضی نفس‌ها که آماده است میپره و میگیره حدیث شو بخونم اینه فی ایام دحرکم نفحات الان فتا لها این نفی ایام دهرکم نفهات هان بیدار باشید الا هان حشیار بشید. حواستونو جمع کنید خوابتون نبرا میبرنا میگیرنا یعنی من اینو باید غصه بخورم دیشب سحر شد اذان صبح گفتن ای وای چه کسانی بل ایدن کیو؟ انایت خدا را رحمت امام زمان را اون افاظت الهی که بنوان ماه مبارک رمضان برای بود همینجور از عالم بالا بریزه کیا بل ایده من اون چنان خوابم برد این شب و روز و ماه و سال و آسمان و زمین که نفس من اوج بگیرد من گرفتم خوابیدم اما اونایی که دیشب داشتن عشق میریخدم الهی الاس میگفتن گردن کش کرده بودن دعای ابو همزه امام سجاد رو با خدا در میان میجشتن و ناله میزدند الهام بل ایدن نفسی یه چیزایی رو یواشکی که دیگری بغلتی هم متوجه نشد لذا ممکنه ما همه در شب غرب توی یه مکان نشسته باشیم فیوزات از عالم بالا بیاد بغلدسته من اونچنان ببلعه این بلعیدن قلبی است من بیخبر او رفت من کجام کاروان حرکت کرد سرسنگ ها از من دور شد من تازه یه چشمی باز میکنم میبینم گرت و قبار قافله از دور میرسه لنگان لنگان دارم گامی برمیدارم اندرین ره میخراش و میخروش تا دم مردن میخروش و میخراش تا دم مردم دمی ساکن مباش حرکت تلاش، خب این الهمه ها یعنی اینجوری خدا قرار میده که این نفس ها به نفس که میبلعه میگیره چی را فجور ها و تقواه فجر که فجرم میگیم فجر صبح شکافتن اصل فجر یعنی شکافتن روشنی صبح تاریکی شب رو که میشکافه بهش میگن فجره گناه را فجور میگن فجر میگن چون پرده دیانت و پرده حریم بین ما و خدا را میشکافه ای پرده رو پاره میکنه ای حریم خورنت بین خود و خدا را از میان میبره پس فجور کنایتن گناه در اصل لغت یعنی پرده حرمت بین خود و خدا را شکافتن تقوا ثلهمه ها ها و تقوا ها تقوا از وقایه است وقایه یعنی خیشتنداری خود رو نگه داشتن در اون جایی که دارم میل بتونم خودم رو نگه دارم اینو بهش میگن تقوا کنایتا در تقوا رو به پرهیز معنی کردن چون لازمه خیشتنداری پرهیز کردنه <تصفح> مثلا پرهیز مادی جسمانی پزشک <تصفح> به من میگه این غذا رو نخور من با قدرت خیشتنداری داشته باشم پرهیز کنم الان میلم آخی غذا خوشمزه است آخی چنین چنانه میگه خودتون نگه دار خود کنترل کن اجتناب کن از این غذا نفسه به او الهام شده یعنی این قدرت داده شده یعنی این نیرو داده شده که چی بشود؟ به گونه ای شود که خودشون نگه داره بگه نه برو برو این دام بر مرگ دگرنه نه که انقارا بلند از آشیانه نه نه نه من فریفته نمیشم اما اینجوری هم هست این نفس که چی؟ زود گول بخوره زود فریفته بشه زود تحت تأثیر قرار بگیره سال همه ها و تقواه ها حالا سوره نازعات این دو تا آیه چهل و چهل یک با این بیان الهام و فجور و تقوا الان مشخص میشه و اما من خاف مقام ربهی. اما من کسی که خافه تفسید خائف شد خوف او رو گرفت از چی از مقام رب خدا یک موجود نهوزه بالله حیولای وحشتناک ترسناک نیست مقام الهی ناظره بر اعمال منه همه امور منو میدونه کم من قبیهن سترته چه قبایهی من دارم که خدا تو پرده روش انداختی اگه بخوای برداری آبروی من میره ولایم کن السرار من حکومتهک از دایره حکومت تو کجا فرار کنم برم که امام سجاد علیه السلام فرمود اگه میخوای گناه کنی بکن ولی به پنج شرط شرط اول در معرض دید خدا نباش شرط دوم جلو مرگ تو بتونی بگیری شرط سوم اگر مردی جلو محاکمه خدا رو بتونی بگیری خب حالا تا اینجاش بمونه اگر خوف از مقام خداست یعنی ناظر یعنی می‌بینه یعنی در محضر او هستم و اما من خافه مقام رد دهی فنه النفس عن الهوا نفسش رو از جنبه هوایی نهی میکنه باز می‌داره و او که نفسش را از جنبه هوایی نهی کرد سئن الجنت یالمعوا پس به درستی که معوای این کس جنته خب حالا اگر کسی نفسش رو از هوا نهی نکرد نه نقطه مقابل جنت میشه دوزخ در این دنیا بهشت به و دوزخ داریم در برزخ هم به هشتو دوزخ داریم در قیامت هم به هشتو دوزخ داریم که بعد بهش میرسن حالا اگر ما این معنی رو برای نفسمون قائل شدیم و فجورها ها و تقواه حیوان هم نفس داره گیا هم نفس داره سرشتگان هم نفس مجرده هستند. ما هم نفس داریم اما فرقش چیه؟ گیا چون موجود زنده است، نفس داره حیوان موجود زنده است، نفس داره اما نفس اونها در یک جهت معین میره جلو دیگه نفس هوا داشته باشد یا ضد هوا. این طرف رو بگیره یا اون طرف مثل دو کفه ترازو این پله یا این پله این برای حیوان و گیاه مطرح نیست برای فرشته هم مطرح نیست فقط برای انسان لذا سوگن به نفسی که تذکیه پذیره است یعنی انسان و نفس و ما سواها فعل فجورها و تقواها قد افل همم زکاها زکا تذکیه در لغت یعنی چی؟ زکات تذکیه یعنی در اصل لغت یعنی رشد نمو زکات مال به در کن که فضله رز را چه باقبان ببرد بیش دهد انگور <تصفح> زکات نمو تذکیه عامل <تصفح> نمو پاکسازی اگر پاکسازی نکنیم نمو نمیکنه لذا میگن قد اپله من زکاها یعنی نفس رو میخوای رشد بدی نمو بدی راه رشدش اینه که اون های سقوطیش که حواس اونها رو در خودت راه ندی پاسبان حرم دل شده هم شب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه او نگذاره یه پاسوانی بذاریم در حرم دلمون در این نفس بلند الهیمون هوا داره میاد اون چنان لگد بهش بزنیم و این نگهبانو وادار کنیم دورش بکنه بگه برو خانه دل نیست جای صحبت اقیار دیو بیرون نوبت فرشته درآید شما رو راه نمیدم اینجا اما وقتی خوابالودم قفلت زده ام اون چنان در موقع حجوم این دشمنان خطرناکه هوای نفسانی دوست ناباب رفیق ناجور محیط ناجور فیلم ناباب مجله ناباب و, و اینا رو نگهبان نمی دور کنم اینا هی میاد اون وقت وقتی به خودم میام باید بگم الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و هوایی قالب و وطاعتی قلیل و معصیتی كثير. اون وقت کسی اینو توجه پیدا کنه وقتی بخواد بخونه میلرزه میخونه الهی قلبی محجوب کن ای خدا قلبم یعنی اون روحم اون جانم تو هجاب افتاد بین قلب من و تو باید قلبم تو رو میگی پرده رو ششیدن و نفسی معیوبان ای وای نفس من بیماره نفس من علیله و هوایی غالبان هوا غلبه کرده بر من مسلط شده تاعتی قلیلون من اندک تاعت دارم و معصیتی کسیر معصیت خیلی زیاده این انسان عف میکنه در مسیر تکامل پس نفس انسانه که و زکاها یعنی میتونه رشت کنه یعنی انسان موظفه به پاکسازی باشه حالا این پاکسازی ها چجوریه؟ به چه است یه حدیث از امام صادق علیه السلام میخونم دیگه شبهای مهرمزون خستت رو نکنم به عبادات به خصوص شب جمعه آقا شب جمعه خود شب جمعه موضوعیت داره شب جمعه ماه رمضان، اون مثال الهام که زدم یادتون باشه یه گردنهای دان کشیده شده به سوی عالم بالا نکنه اون چنان ببلعن که ما تو خواب باشیم شب جمعه ماه رمزان یه حساب دیگه ای داره فیض میواره ترابش میکنه انشاءالله به اون جمعه هم برسیم که به عبادت و سوز و گداز و راز و الله حال و به اون جمبه هم خودتون داشته باشید من یک حدیث میخونم از امام صادق علیه السلام و سلام مدرکشم میگم اونایی که میخوان پیگیری کنن این بحث و عمری باشه شب جمعه آینده انشاءالله پیگیری کنیم کتاب سفینت البحار جلد دو صفحه 728 الله صادق و علیه السلام اهذروا احواکم کما تحذرون اعداءکم اهذروا برحذر باشید فاصله بگیرید نگران باشید نقل به معناش حالا برحذر بودن نه دور بودن فاصله بودن فاصله گرفتن دور شدن اما نقل به معنا کنم یعنی بترسیدا نگران باشید خائف باشید از چی؟ احوائکم از یه هواهای نفسانی که حالا اینشالله با دست کنیم چه کار کنیم تو نفس ما هوا نیاد یه مثال بزنم مثال تا در مثال معنوی این نیست من توجه دارم اما از مثال یک زرفی دارید میخواید از یک آب گوارای سالم ارزندهی توش پر کنید لازمه اینه که هوا از این زرف چی بشه؟ خارج بشه دیگه هوای مادی به هر میزانی که هوا توشه از این آب گباراتوش کمتر جا میگیره لذا شما اول باید به یه نهری هواشو خالی کنی تا این توش جا بگیره هوای نفسانی هوای مادی نیست همایلات حیوانیه به هر نسبتی که در نفس ما هوا یعنی تمایلات حیوانی هست ارزش های الهی در او جا نمید ماه رمضان ماه مبارزه و هوای نفس. چگونه مبارزی و هوای نفس بکنین دیگه توی جلسه نمی انشالله این درازده شب که انشالله بحث خواهیم داشت عرض خواهم کرد. بر حضر باشید از هوایتون کما تظرون اعداکم همون گونه ای که از دشمنامتون خذر میکنید اوج جنگ ایران و عراق بود. من تو کلاسی یادم میاد بحث نفس و هوای نفس رو اینا داشتیم برای بچه ها یه دفعه مثال به ذهنم زد اونجا اینو گفتم هر وقت به این بحث میرسم یادم میفته میگم گفتم بچه ها ببینید الان اگر شما خور رمشه یعنی اون موقعی که از هر طرف بمب و موشک و خمپاره و جیر و چیمی اومد گفتم شما الان اگه خور رمشهر باشید اهواز باشید همینجور مثل خیابون های تهران که را ب آقای موشکی یواشکی از لاین لا دیوار بپرید اونور چرا دشمنه دیگه درخت میزنه آدم باید خودش از دشمن در دلس دشمن کنار نگرداره اما چرا تو پینادروی تهران اینجوری را نمی‌زید اگر را به مسخرهتون می‌کنن آقا آدم راه برید دیگه چه اینجوری می‌کنید آقا دشمن شیطان به عنوان یه دشمن آن به آن در کمین ما هست قبول داریم یا نداریم دشمن قسم خورده است یا نه گفت حضرت موسی داشت کوه تور دیدن ابلیس پشت داره میره احادیث ما میفرماید گفتن ابلیس تو که به انبیا راه نداری گفت میدونم ولی برم ببینم میشه کاری کرد یا نه جایی که ابلیس نسبت به انبیا ول نمیکنه برادر جوان بزرگتر از جسارت نمیکنه خواهر جوانم بترس ماه رمضان رو گریه کنیم ناله بزنیم مناجات کنیم از خدا کمک به طلبیم شیطون غویه همون گونه که از دشمن ما حواسمونو جمع می کنیم. چرا اگر یک کمی امنیت جامعه رو به ضعف بود قفل خونهاتون رو عوض میکنید، یه پشتبندم پشتش می زنید دور حیاتون هم بالا می برید دشمن در کمینه باید خودم رو حفظ کنم یک دشمن خطرناک به نام هوا داریم چه نرده ای دور دلمون کشیدیم چند تا قفل اومدیم دور قلبمون قفل کنیم محکم و نگهبان و پاسبان در کنار حرم دلمون قرار بدیم و بگیم پاسبان حرم دل شده ام هم شب همه شب شب فاطمان حرم دلم یعنی مناجات شب اونا راه هاشی که حالا بعد عرض خواهم کرد فلیس شیء ادامه حدیث امام صادق علیه السلام حذروا احواکم بر حذر باشید از هواهاتون کما تحذرون اعدائکم همون گونه که از دشمنانتون برحذری فلیس شیء اعدا للرجال من اتباع احوا و نیز چیزی دشمنتر خطرناکتر برای انسان از طبعیت از هوای نفسش اینو دقت فرمایی هر چیزی که جوابش دادید قانه میشه دست بر میداره. الا هوای نفس خب دقت کنی الا اینکه فرمود لیس شیعون اعدال رجال من انتبا احواله هیچ چیزی دشمنتر برای انسان نیست از اینکه از هواش تبعیت کنه آقا هوای نفس اگر به چیزی گرایش پیدا کرد این جوری نیست برادر و خواهر بگی یه بار جواب بدم دست از سرم بردارا اگه اول تونستی بکوبی دورش بندازی کوبیدی اگه جواب دادی جسورتر میشه پردا بیشتر میخواد پس پردا بیشتر میخواد یه وقت به خودم میام وای این سرازیریه رو چنان سر خوردم که نمیتونم خودم رو نگه دارم باید این زمینه رو در خودمون ایجاد کنیم مثل جناب خور در صحرای کربلا پس انشب به جذب به اینجا رسید داریم عرض ادبی به وجود مقدس خور داشته باشیم و ماه تو است ماه بازگشت به سوی خدا است. از این طائب آستان حسینی درس بگیریم ما شاء الله طائب بشیم نفسمون رو برگردونیم اگه سرازیری داشتیم میرفتیم جلوش رو بگیریم انشالله ببینید پس خلاصه این شد انسان یه بعد عظیم الهی دارد به نام نفس الحام میشود به نفس یعنی در زمینه وجودیش این هست بالاتر از نفس حیوان و بالاتر از نفس فرشته هم فجور هم تقوا که انشالله بحثش رو جلسه بعد خواهم داشت اجتماعی زده نیست زمینه پدیرش حالا این زمینه پدیرش به چه معنا بمانه اونهایی ای که این نفس رو تذکیه کردن اصل تزکیه یعنی رشد رشد دادن رشدش به چیه هواها رو از او دور کنن پاکسازی بکنن بر ذره حریمه این نفس و قلب بنشینند نامحرم رو راه ندن اینا عوج میگیرن شیطان و ایادی شیطان میخواد اون هواها تو نفس ما بیاد با اومدن هوا مثل ظرفی که از هوا پر شد دیگه جای یک آب توش نباشه روزه میگیرم چرا عبض نمیشم نماز میخونم چرا تغییر در من ایجاد نمیشه بفرموده امیرالمؤمنین عليه السلام کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع و الزما کم من قائم ليس له من قيامه الا السحر و العناء حبذا نوم الاكیاس و افطار فرمود چه بسا روزه داران فقط گرسنگی تشنگی مون که بسا شب زنده داران فقط بیداری شب و خستگی بیداری براشون مند هب نوم الاکیاس و افتار هم خوش ها اون زیرک ها از نظر حتی خواب و خوراک چرا اینجوریه؟ هوا نمیذاره اگه نماز برکت میاره هوا و برکت رو میگیره مگه روز آشورا نماز نمیخوندن؟ آها در مقابل شفه امام موزه نماز میکوندن شب یازده همه محرم این دکتر رو انایت داشته باشید شب یازدهم محرم وقتی خیام عبی عبدالله میسوزه اون طرف داره قرآن میخوامه این قرآن چه اثر اثر نکرد؟ هوا وجود داره اما اونی که تو دلش هوا نیست گفت که یه وقت دیدم خور داره مثل بیت می درسه. نزدیک شدم تو سپاه عمر سحده خدا هر اول رئیس لشکره. گفتم که هر تو خیلی شجاع بودی. توی کوفه معروف بود که تو از شجاع ترین افراد بودی. ترسیدی که این گونه داری میلرزی گفت خدا قسم ترس مرگ جسمانیم نیست. من یک آن خودم رو بین دوزخ و بهشت دیدم. من فکر نمی کردم واقعا این مردم با امام حسین تا به اینجا جلو بیان ولی اینام همیست که می کنه رو بخوشم من می لرزم. چه بکنم برم جلو قاتل امام حسین بشم وای بر من نرم جلو چه بکنم میگه دیدم همین یور که مثل بی می لرزی و رنگ چهره هر تغییر کرده بود یه حال عجیبی داشت یه وقت دیدم یک نهیوی به اصلش زد از سپاه عمر سعد جدا شد دیدم احور به لشکر خیام عبی عبدالله نزدیک شد اما نزدیکی های خیام عبی عبدالله که رسید از اصل پیاده شد آقا ما پیاده یبنف زهران امام زمان به خدا ما پیاده ما مفتاده ای ما انشالله تو خونه ها هممون میریم یواشکی تو اون خلوت تو تاریکی سر مونده رهنه است پامونه به رهنه میکنیم اشک چشمانمون جمع میکنیم جاری میکنیم صورتمون رو رو خاک میذاریم میگیم ما پیاده ایم و پشیمانیم بد کردیم گناه کردیم آلوده بودیم حالا میخوایم خوب شیم میخوایم آدم شیم یه رسمی تو عربه وقتی سپر رو برمیگردونه علامت پناه خواهیه. یعنی من جنگ ندارم سپر رو برگردوندم یا شمشیرشو تو غلاف میکنه شمشیر قلاف کرد گفتیدم هر کفشاشو در آورد پاشو برهنه کرد وخلا نعلیک وادی وادی مقدسی یه حساب دیگه ای داره دیدم کفشاشو در آورد این سپر رو برگردون سرش هم انداخت پایین همینجور سروزیر به طرف خیام عبی عبدالله آقای امام حسین فرمود عباس اول فضله ببین کیه که انقدر سر بزیر و با گردن کج میاد اومد ارز کرد که آقا جون هره پناه میطلبه امام حسین اومد داره که دستشون رو بردن زیر چونه هر و ای سر آوردن بالا فرمود کسی که پیش ما سرش افتاده نیست آقا توبه من پذیرفته است <تصفيق> امام حسین فرمودن بلی توبت است. آقا من اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم زن و بچه شما رو لرزندم میخوام اول کسی باشم که در راه شما شهید شدم اجازه میدید همین همینجا برگردم برم میدان شاید امام حسین فرموده باشن آخه تو مهمانی بر ما پذیرایی مهمان لازمه هرم گفته باشه آقا جون مگه شما مهمان ما نبودی چگونه از شما پذیرایی کردن؟ یه وقت چشم وا کرد دید امام حسین علیه السلام بالا سرشه و سر هر رو به دامن گرفته با دست مبارکش خون رو از چشمهاش پاک میکنه الله علیه یا مولای یا عباده